بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله عبدالعالمین و صلو الله علیه سید و رسول الله و آله طیبین و قاتلین المحسومین و لحظ دائمت عبر اللهم فقم و جمعی المشهرین و الحمد به رحمتی که یا الرحم که هر استفرامی که در اختلاف دافع و غاوز یکم در کروح سابرش تیلی شرح سلانی داده شد و همون نتیجی دیگه نهاییش اکتفای میکنی تر اینه در دافه دافع ها رشتون یا رشتون از کلم بعد لغوی ها نرشتن که رشت خود عمله و رشتون پولیستگاه شده چون رشت و رشوه دو تا زبط معروفش به کس رو به زنه زبط به فرق هم شده نوشتن رشوه مسلطه مسلطه نیسته حرکت کس رو فرق خوزن معروف سرش دو تاست رشوه و رشوه و بعدیان فرق گذاشتن که رشوه خوده به اصطلاح عمل یا رشوه اون پوله و از ممکن در وقت از کتب یا ادبی یا موقع این آمد روشن اما استعمالش به عرب روشن نیست احتمال داره به تفنینات علمی باشه بخوره یه دی خود که ابنوکاس میدونی که مثلا در جایی نیامده توی کنه نفته خاص ورقابضا انها حدیدیتون فاسده لدفت الغرم ان نفسه ارز کردن مرحوم شیخ اینجا بحث قرامت رو مطرح تاییم چون نظرشون درسته زمان بوده و الا اگر ثابت بشه رشت یفست سبا فائلو بلکه از من سر و خودشم عرضی میشه بناهن عرامات سبا منان حدید المحرمه لا تو جهاز زمان از کردین معروف بین اصالت زمان فعلت همینه و مسلم و محلوقان هم گرفتن فی تقدیم الاغل لعصالت زمان فلیت که همون قاعدی مورد از اصالت زمان عموم عدلیت دارید او تقدیم الاخر که قابض باشه لعصالت عدم سبب زمان چون اگه شک بکنی زمان آمده نه عفل عدمشه و منع اصالت زمان اصولا قاعده عدلیت رو قبول نکنی. وجیهان اقوام ما علی خود معلوم شد به قاعده زمان برگشتن قاعده زمان دیگهشون زیاد توضیح دادم حالا شیخ از این راهوارشه مشکل قاعده زمان اینه که چون قاعده زمان مخصص خورده اگر تکلیف مجانی باشه زمان نیست عللیت جاری نمیشه این شبهه مساوی مخصصه چون شبهه مساوی مخصصه به عموم نمیشه مراجعه اما ایشون از راه دیگه رفتن لأن عموم خبر علی الید به زمان الا مع ما تسلیث مالک مجانن ولاصل عدم تحقق یس اصل این است که این تسلیث مجانی در اینجا باشه بله و و هذا خاصه اون علاه اسا تا عدم سبب زمان این اگر این باشه خب اصلا خود هاواش هم مرادش مجموع یعنی مجموع علی با این اصل هست کردم در اون بحثه گذشته باعث میشون فهم نریسته اشاره به همین نکته ویژه جان هست کردم نمیدونم خودشون علم رو ما هم دماغم. و عرض شد که مرحوم استاد در ذیل کلام شیخ یک مناقشه ای با شیخ کردن اما به نظر ما به نظر ما شما استصحاب رو از باب تعبد به روایات و احکام لاتن گزوجت نمی دونید استصحاب رو از سهم عقلایی و سری عقلایی حجت می دونید اگر این باشه و برگردیم به استکازات و اوغلایی که قابل قبول باشه در اینجا درست این مال قبلا مال این شخص بوده این قبول قابل قبوله خودش رشوه داده خودش رشوه اینو تاسیس مجانیه قابل هم میگه نه هدیه داده اونم یه نوع تاسیس مجانیه درک میکنید یعنی که انما هر دو طرف اتفاق نرم یک نحو این داده خودش اقدام کرده بله این اقدام او انظار شرعی امضا نشده اگر شو باشه یه فاسد و حرامه و کبائره و اگر هدیه فاسده هم باشه این عقد امضا نشده. یعنی به عبارت مخرا این تسلیف از نظر قانونی صحیح نیست خوب دفت بکنید. از نظر مالکی بوده فهمالو که مثل شما شما یک مالکی داریم یه قانونی یا شریعی داریم این تسلیفی این به لحاظ شخصی که بوده خودش که من داده میگه رشته دادن قابلت هم میگه نه آقا حدیه بوده دفت بکنیم پس هر دو اتفاق بر تسریف مجانی داره. لکن تسریف مجانی در حد مانکی تنبال بکنیم اما تسریف مجانی در حد قانونی نه چون قانون هیچ کدام امضا نکرده نه رشته امضا امزا کرده نه حدیه فاسده رو بحثتر اینه که اگر اینجور باشه شمول استثاثر از نظر عرفی مشکل میشه نه به لحاظ تعبور چون ما استثاثر رو به لحاظ عرفی و غلطی حجت میدونیم شمول استثاثر بگیم که اینجا تثلیف مجانی نیست از از این چون تثلیف مجانی که هست تثلیف مجانی مالکی این هست قانونی نیست کار چرا؟ خودش جاده. میدونم میگه خودم به دست خودم این خود روش شده. و هر حال این اقدام درسته. این ماشین مال من بوده. من این ماشین رو به دادم. در حد تسلیط مالکی. من متفه بهم. نگه این حرام فاسده. قبول برم فاسده. اگر ما بردیم استثحاب رو, رو ارتکازات دقت اغلایی. اقلال نمیان جهت پانونی رو نگاه بکنن میگن این آقا خودش اعتراف کرده من این مال رو دادم به بازی دیگه اگر ما خیلی بکنیم هموند استثاب بقای ملکیتش خالی از مشکل نیست. یعنی استثاب اصل عدم تسلیط مجانی این خالی از مشکل نیست. بگرد میکنیم این, میکنی؟ این یک مقداری رو پیدا میکنه ولی ازا به نظر ما این استثاب هم جاری نمیشه خود قاعده علی وطب ل... روعادیت و همان نتیجه ای حال بل من مقداری این عبارت مهموم استاد بخوریم هرکاری مهم استاد در اینجا در عبارت عم خبر یه هست دیگه به یا دارن و فییه نوشن دو سه سطحه در این ثالارتقا ها آمده در این کتاب به اصلا این کلاس هست این آفااز به مواسب اون ارت نبود اون عبارت من نفر مین معمن عب نفهم میم که چیه اون تیشون چی میخواد بهفهمون در اون عبارت لیکن ایشان بعد از اون عبارت از راه دیگری استاد رفتن خوب دقت بکنید اون راه دیگه شینه و تحقیق انه صلیت بالشریعه المقدسه عدم جواز تصرف مال المسلم الا به قب نفسه این روایت تراوان اصلا اصل جزء روایات بسیار مشهور و معروف از اسانید متعدد و سرت فیها ایذن ان وضع الید علی مال بدون رضا مالک نوجوبیت مطلقاً چون این حدیث علیت قبول نمی‌کنه موجبون رضامند اگه رضا نباشه لزومیه قضیه و من الواجب ما در ما نحروفی اینجوریه این آقای قاضی ماشین رو گرفته ماشین که ما رو اون طرف بوده و من الواجب ان وضع یعنی مراز بعد یت قاضی الان مالغه برای این ماشین در مثال ما فیلمقام محرزون دلوژان این آقای قاضی ماشین این طرف رو گرفته فعضا و هم نائله من خودم برای که دکت بکنید دقت های مرموم استاد و فقه ها اصولا باید دقیق کنید ایشون به جای اصالت و عدم تسلیف مالک مجانن یه اصل دیگری اضافه کردن فعضا و هم نائله اصالت عدم رزن مالک تصویل تصویل مجانی اصلاح اشکال ما نمیشن ممکن است که بلقیه تصویل مجانی انجام شده شفت میکنیم آیا مالک راضی هست یا نه خود دفتت این چی پس شیخ اصالت و عدم تصویل مالک مجانه این رو اجرا کردن که ما هستیم اشکالی کردن به این اصالت تصویل که من سردارد مرحوم آقای به اصطلاح مرحوم آقای اشکال می‌کنه که این اصالت، اثباته از این تأسیس از این مجانی نیست. اینم شعبه دیگه‌ست اما اینجا نمیاریم شعبه مرحوم آقای راوانی. آی کوی عظیم راوانی که ادوامه نائل است اصالت ادب رزل مالک به تصرف مجانی. کالف الموضوع من الراجیان است که اینم در بحثی همین چند روز توضیح دادیم. یکی اسطلاح داریم که اینو به نحوه منطقه شخیلی خوبیش در کلمات مقرول ناینی آمده بیش ایشون نصف ایشون موضوعات مرکبه موضوعات مورد کرده چند میکنه؟ بکنه بعضیش میشه نصف موضوع رو با وجدان ثابت کرد نصف با هست یا همش با وجدان یا همش با هست مثلا این سابه من آب بوده یک کمی نمک نیخیم توش شفت میکنیم از ماییت خارج شده مین اپ سالان کور بود یک بار داشتم شک میکنم از کوریا کار شده استصاب کوریا هر دو رو ما اون کور رو هر دو به تعبد ما اون به تعبد کور به تعبد میشه بعضی وقت ما اون به جان کور به تعبد کور رو به به تعبد شده یه بحثی دارند که اصول و موضوعات مرکبه که مثل ما و کور که موضوع مرکبه البته همه جا نه اینه چغی داره که چون بعضی بازه بحث اصولیش میگه بشن بعضی از مواردش اینطوریه که میشه این اجزاء موضوع رو همش رو با عسل همش رو با وجدان بعضیش با عسل بعضیش با وجدان مثلا این بیرویدار ما اون سالادر بوده ما آن و کارون به تعبد ما اون به تعبد کور به تعبد هر دو به وجدان یکیش اولی به وجدان و همه جور میشه اگر سه غیب داشته باشه چون با اون ذابطه ای که عرض کردن داشته باشه فلزهشون می فرمان که فیدا و نائله از اصالت عدم رضا مالک به تصرف مجانی تعلق الموضوع من الوجدان دلعرض وجدان این که این مالک وضع مال, مال بعید کرده بر مال غیر و این با اصل عدم رضا مالک و حکمه به زمان آیخوی اخیر را نه اثارت و عدم تکلیف مالک مجلانند اثالت و عدم رضا مالک به تصرف مجلانی اون رو روشا به صورت اون رو به این چیزی ولیس المراد و اصل المذکور میفرماید مراد ما از این اصل مذکور استصحاب بر عدم الازلی بل مراد به استصحاب عدم مراد به استصحاب عدم محمولی و هو واضحون و این قلنا به حجیه فل اوله ای برنه. اما ایشون تحبیل کردن استثاب عدم عزلی در مقابل استثاب عدم مهمولی خیلی فنی نیست عبارت ایشان درسته مراد ایشان می چیه اگر در مقابل عدم عزلی می فرمدن عدم نعتی استثاب... فی استثاب عدم عزلی روشن ترون ببینید این بحث معروفیه در همون اصالت و عدم قرشی فلمره که اگر شرک کردیم ازم و قراشیت میشه اون اصل دو جور تقریب میشه اصل عدم و قراشیت تا این زن نبود نبود فکر این زن که نبود چی نبود دیگه نه قراشی بود،, بود نه غیر قراشی حالا پس اص... این زن چی که یا شد اون یکی استثاب بکنی ازم این اصلاحات شن استثاب ازم و به نحوه محمولی مرادتو از نحوه محمولی فقط وجود و عدم مثلا زن نبود قارشیت هم نبود ببینید قارشیت نبود زن فیدا شد قارشیت شک می کنید عدم قارشیت آقای میگن این استثال جاری می که اشتال نبود ازم محمولی لیکن این به درد نمیخوره. اونی که به درد نمی اینه این زن قارشی نیست این زن قارشی نبود و عده نیست این استداحان بشینه عدم نرسیبی مثلا وجود به اصطلاح سناری و اصطلاح اگر بحث وجود باشه وجود داشتن باشه محدودیش میگه اگر اصفاتی صفتی باشه بو عدم اصطلاحیشون در اینجا عدم ازلی یا عدم نحوی میگه و لذا اشکال محمود در استفاضه قرشی اینه به نحو عدم محموده حالت ثابته داره اما به درد نمیخوره الان اشاره کردم این از اونجایی است که موضوع درست نمیشه یعنی خوب دفت بکنید این از اون است که موضوع درست نمیشه چون بیدیم زن نبود قرشی هم نبود حالا زن هست قرشیت رو به تابق وجود زن برشدار کنید چرا؟ چون عدم قرشی از اونه و عدم به در نمانه میکنه ما عدم نهتی میخواهیم عدم نهتی میشید یعنی این زن قرشی نبود این حالت سابقه نبود چون زن از هینه نقاض نسته یا تا قید پس الان اگه یاد این لحظه ارز کردن موجوعات مرکب رو داره اینطور نیسته اگه موضوع مرکب شد بگیم یه هیچ ویژان ایش مثلا در اینجا ویژگان داری این زن موجود شد تحبود هم داری قارشیت نیست لیکن ممنونی دیم به درد میخواد چاستان خود رو داریم از مقالصه خا ما دیگه تعربی چه اثر مثبته است اگه مثبث اسمش بگذارنیم. یا بگید موضوع پیدا نمیشه با عدم محمولی پیدا نمیشه خب اون تو موضوع پیدا خب اون کسی که اس مثلا میگه ما نهی می‌خوایم از عدم محمولی اثبات می‌کنیم نهی این میشه مثبث یه کسی مخاط بگه نه اگر محمولی هم کافیه خوب دقت بکنید پس اونی که ما داریم این راهو ساخت داده شو. که ما داریم اصالت و علم قریشیه. مرحوم نیلزا میفرماد چه وقتی گفت که الا هتکونه امره عتن من قریش این معنیش اینه که المرء تو غیر قریش این نعت می‌خواد. مرء به نعت کونه غیر قریش. اما شما بگین اصل و علم قریشیه این اثبات نمی‌کنه که مرء غیر قریش است. این اشکال مرحوم نیلزا. یه دفعه شما به اصطلاح اه... الان این نوکشن شو... یه نوع عنوان عدل نعتی می‌خوایم بگیم که این عقل این مرحله تفکر اش اینم که ایشون میگه حالت سابقه نداره میگن بس... یک بحث بحثش اینه که اگه یاد آعلام هم آخویی و دیگرا چه دیگه آیه حکیم که اصلا در درسته گفتن عدل نظریه ثابت میشه غیر از مثلا مسئله در حوار و اصولش در بحث استصحاب آدم غیر از این جهت اما به طور کلی غیر از این نوکشن اشکال کار اینه که مثل مرموم آقای خوبی قدساللهان هسته حرفشون چیز دیگری هست اشتباه نشاه یعنی حرف اینه که درست اینجا عدم عدم عذری است اما این عدم عذری کافی است ما عدم نهتم نمیخواییم خوب دقیق اون موضوع ما با عدم نهتم عذری هم درست میشه حالا این ایک شرقی داره که جا اینجا نیست اینجا ظاهرا مراد ایشان این باشه ایشو میفرماند ولیس المراد من الاصل مذکور استفاب عدم العذری یا مرادشون استفاب عدم العذری نحوه نتی یا نه همون عدم رضا و عدم رضا اینجا کافی است این من علو چون بحث رو گفتم یک توضیحی خیلی مختصر ارائه بکنم اون نقطش اینه که اگر ما بخواهیم قیل خیریت رو از استثناء در بیاریم از تخصیص در بیاریم این به نحوه نهتی نمیشه چون فرقیل المرعت رو سر از در ملا خمسی نزن الا انتکون نگم المرعت رو غیر القراشیه گفت الا انتکون امرعت رو غیر القراشیه ما میگیم معنیش اینه المرعت رو غیر القراشیه ایشون میگه نه در این عنوان همین که سادست بکنی زن هست و قرشیت محفر نشک این کافی این علوم سر بکنی چون بحث مداری سگینه بگذاریم در محل خودش نا اینو میبرمانه نه اگر فرمود المرعت و ترزن الاخنسین سن الانتکونه این رأسن من قرش اصلا معناش اینه المرعت و قیره قرشیه اصلا معناش و قیریت در اینجا مثل نعته مثل الرجل رو آله اینم بحث دیگه که ادم ناتیمیشه مرکز چهاری که عدم باور عنوان نات آمده بود مرکزش لرگرده بعد نات مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه که مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه که تغیید فرقیده یه موجود و عدم نداره ازمینشون محتقاً تغیید موجودی خیلی میاره اما تغیید عدم میگه که ما عدم عدم روی چی وقتی عدم بود بگه قید نیداره لذا المرعه تو قید القراشیه صرف که اگر ما بدونیم مرعه هست و قراشیت نیست نمیخواد قراشیت و مرعه این مقدار صرف میکنه. چون تغیید تغیید سلویه من باید این بحث بشم عسهون ولی مراد من اصل مذکور استصحاب عدم ازلی مراد این نیست بل مراد استصحاب عدم محمولی یعنی ما فقط می‌خوایم بگیم عدم رجل مالک نه به این تصرف خارجی نه عدم رجل مالک همین که بگیم مالک اول راضی نبود الان هم راضی نیست ما دنبال این نیستیم یعنی به عبارت دیگر اصل اولی وضعید علامال غیر منتبند زمان منخیر رضا پس موضوع اینه وضعید علامال غیر مندون رضا مندون رضا اینجا خواهده عدم نهتیه و از این خارج و این موجب زمانه مگر اینکه که راضی باشه ماله به تصرف مجانی این مخصصشه معرض مالک به تسروف مجالی لازمان ما شک میکنید آیا رضای مالک هست یا نه اصل عدم رضای مالکی چون در عرض عب... که نبوده استثاب عدم رضا بکنید و استثاب عدم رضا به نحر عدم محمولی هم کافیست نیم خواهیم بگم عدم رضای مالک این تصرف اصلا عرض نیست که هیچ مالکی راضی نیست به تصرف مجاری در مالش. این خلاصه اشکال جوابی که مرحومه استاد فرمودن یک مقداری که ایشون در اینجا این فاضل معاصلی اشکالاتی به ایشون کردن خب بیشتر ناشی از این است که با مبانی ایشون آشانه بودن اما آیه حاله ای این استثاب جاریز یا اشکالی اشکال اینجا سؤال. این استثاب پس حالات و عدد مقید زنماره به تصابق یک چون از مال ما رو با غلایی بگیریم شمهی که ما در این جمع اون صفات احسانیه که ما راهی برای احراز اونها نذاریم جز به تصرف خارجی جز به یک بروز و ظهور خارجی اینها معلوم نیست محله استحاب بشن یعنی به خلاف نوشته مرحوم و استاد و این استحاب عدم عزلی، این در حال استحاب عدم احزانی نیستن که استحاب عدم احزانی این خودش عدم عزلی. این که در دارایی اصولا مالک نیست و تصرازی نیست این از کجا ما احراز بکنیم این چی از احرازش بکنیم اصولا چه ج... اجرای نسبت به اموری که صفات نحسانی هستم خوب دقت بکنیم و ما ازش خبری نداریم مراده از حساب عدم اعذاری من خوب یک خوب دقت بکنم این نیست که فقط نصف ورشیات باشه تو امور اعتباری هم اگر دلیل استفاده نشه اگر نتیجهش با مست فقرشیت باشه اونجا هم استصحاب جاری نمیشه مثلا بعضی عمالت گفتن که اصل این است که اگه شک کردیم فلانی برش واجبه اصل عدم تملک زکاته این شدین اصل اصلی حال سوال شک میکنین به یکی فقیر هست یا نه خودشون یاد شواز نیست میگیم اصل عدم ملکیت ایشونه سوال آیا بیتونی ما اسال تردمیم میری کنیم تو اصال تردمیم کنال کنیم؟ بس با اصد احراز بکنیم یک شخصی فقیره بگیم بلاخره مثلا یک زمان مالک نبود حالا مالک ایم. این یک نقطه فنی دیگه داره اون نقطه فنی اینه است که شما ملکیت رو از کل اعتبار میکنیم؟ اگر شما آمدید گفتیم ما ملکیت رو حتی از حال جمید اعتبار بود اعتبار. میکنی. فکر خب کنید که اساساً آدم مالک اجاره کرد. <تصفيق> چناییه شووطی ممکن است ناصبه باشه و مأذور مالک باشه. یک کیسه بیراه، مثلا خانم مسن شده که مثلا عناقاد ناصبه شده، بگه من برای این ناصب چی مالی بقرارم بزنم؟ این برای مسئول کافه، چون شو برای دیوارم می‌خیل که قرارم. ملکیت امر اعتباری است. اینی که آقای خوی اسرائیل شاگردی اسرائیل استاد در ملکیت دولت دارن، نه بحث این ملکیت قابل جعل می خابه نذ، چون دولت چیزی نیست. اشکالش این که دولت چیزی نیست. لذا ایشون خب، ایشون هم کاری دیگر، شما هم برای دیوار ثانیت می شما برای هم برای حیوان هم می کنید. یه بحثی است که آیا برای ج... هم میشه ثانیت کرد؟ مسلم اگر هم ثانیت بشه، قطعا آثاری که در ملت هست، کلی از آثاری مثل زکاتی ها قطعا برایش باز نمیشه. آقای دکتر کلام درست می‌طلن. پس دنبال برمیگرده در که شما ملکیه از کلیه تبارون. ملکیت رو اگر بعد از وجود اعتبار کردید باید میشه بگید اصل عدم تمنده اما برگفتید نه از هین نه نصفه امی کنم ملکیت داره این میشه مثل عدم عدد فرمی با عدم عدد چون شما بگید چون شوان نمیدونی که این هین نقاط نصفه مالک بود یا نبود مثل شوان از هین نقاط نصفه این مثلا خانم قرشی بود یا نبود ترد نمی کنه پس نکته اساسی رو گفت بکنید اصلا از عدم رضای مالک به تصرف منجنی است. خاص مثل خاطر صاحبی خیلی مستقیماً به بکنه از عدم رضای مالک به تصرف منجنی. این جز سفات نفسی این سفات نفسی ابراز داره. ما اگر می‌خوایم بگیم حس یعنی به ابرازش نگاه میکنیم. خوب دیگه که در میاد اینجا این اثر خودش نفسه مشکل داره. رحمت روز کلام در ما نحوی ادراج شده که از استاد ترجمه علیمند در ما نحوی ادراج شده که خودش یه ادرازن راضی بودن که تصرف بکنه لکن با عنوان رشوه قاضی میگه راضی بوده به عنوان قضیه محرز ده گفتم این صفت ماهی نفسیه با عدم ازدری یکیه ولکه ایشون صفت عدم ازدری جاری می کنن این که این من استصحاب عدم نه همون عدم این صفت عدم ازدری یکیه ایشون شیار فرموند چون ما نمیگونیم اصلا این صفت نفسانی از اول که این حالت رضا داشته آیا راضی بوده یا هم بوده اصلا نیکی سنی که ایشون حق تصرف داره بلوغ هست و روش فه الا برمون فه الا برمون نقاح و آنست و من هم روشند نستایی نوانید بلوغ و روش این سنیست که تصرف بود اعتبار میشه درست شد؟ ما نبینیمون همون وقتی اعتبار تصرف و رضای او آیا ایشون رضا داشته به تصرف مجانی یا نه اولش فرمایم این که تن دادن و و کریم و از این که داره. این رو ما نمی‌تونیم احراز بکنیم. انصافاً به نظر ما مشکل داره. والله اگر احساب ما برگردونیم به اصل عقلایی، معلوم نیست در اصول و غلایی. لازم است شما علمان عدم داشته باشیم در اصول و غلایی جور صفات نفسانی که اصلش واضح نیست. معلوم تسته های جالی بشه. در این تفاقه نفسانی دوبال ابراز میرن خوب قسم بکنیم مشکل همینه که در ما ابراز آمده این در ما ابراز آمده نه اینکه ابراز نه خودش ماشین داده به این اینکه آمده که ابراز که آمده ولذا با آمنن ابراز در همزم اصل عدم معمولی به تعدیر ایجان جاری میشه در ما جاری نمیشه لذا برای من معلوم نیست یعنی انصافا به زمان اصلا اصلا که عدم روزن نالی کنم نمیتونیم احراظ بکنیم. بکنیم اصلا چگین اصلی با اصل عدم و یکیه یکیه دوتا نیست ایشون خوب بود از راه هم. اصل عدم و خودشون باید این جا راه هر خوبیه ایشون بگن عدم و معمولی نیست عدم قضیه اینجا با اون ترقیه کنه خلاصه بست به نظر ما اگر مثب به دروا همین باشی که الان آن این انصافاً به باب تداری برمی و را با اصول نمی تونیم اصفه بکنه نه این طرف و نه این طرف اگر از این راه نست بردارم برن اون مسائل مثل زمان و ارتکاب حرام و اون تضایی که دیگری که مطرح شده اون مثل این جاوش هم رویست ک حرزه تابع این اتفاقا اگر مسئله اون مطرح میشه به رجوع به در فعل این معنی که فقط زمان نافی کنه نه این جور هدیه خاصی که فاضله در بیانه. این هم حرزه دلیلی نیست. نه ثابت میشه و نه ثابت میشه که ایشون هدیه محرم گرفته فقط ثابت میشه زامل اگر اگه طلب شو. اگر اگرم طلب نشود یعنی اگرم طلب شد دیگه قاعده ما یوز ما یوز ما جایز از سنگیت نمیشه. نه اونی که جاری میشه نه رشده بودن ثابت میشه فقط مسئله زمان به اندازه زمان مطرح میشه این راجب آخرین ترکی ای که ایشون داره. ما یه بحثی راجب خود حقیقت رشده از اول بحث مطرح کردیم و گفتیم اینو میگویم آخر بایی که بایتن اول ارزم کردیم ارز کنم مسئله رشوه و بخمت رشده را داریم خود تنقیه مسئله انجام بدید. به ملا اشکال فیک ش در حرمت شرعیش و حرمت عقلیش به قول مبونیشن عدله عربعه آیات و روایات به و عقل انصافه همینطوره از که به حالا این بحث رو بحث عقلیش رو بگیرم توضیحاتی داده بشه اما راجع به اجمال مطلب ما در قرآن کریم آیاتی که ممکن است رفتی درشت داشته باشه اجمالا سه تاست یک آیه مربوط است پر کارونل سخت که در عنوانش آمده در اونجا آمده که سخت یا نبشه. این یک آیت شباه نشه و طبعا اگر این آیه مثلا بگیم سخت یعنی مثلا چون داره که مثلا حجر زامیه سخته روایات هدف روایات این بوده ببینید ما انها روایاتی اینجا داریم که در این کتاب بگیم آقا نهار کرده توضیحشون نده من الان عرض بکنم در این کتاب این روایت که روایت رویت یزیده بن فرغدن عبی عبدالله علیه السلام شماره در وسائل جد دوازده شاق مرمو ربانی صفحه باب پنج حدیث چهار ما اونجا توضیح هیچ چه ساقه قدر من ارز کردیم یکی احتمال دیم علف الام از صورت عهد ذکری باشه تو ما الان روایات زیادی داریم که مثلا از سده و تا 1400 تا هنشو مثلا من ظاهرا یه روایت روایت صلح شده اینجا هر کدوم بیشتر عدل شکل روایتی به صورت بسیار مفصل از نوع به اصطلاح اشعث ما از اون عدد بیشتر نداریم و بقیه رو دسته‌بندی کردیم اینکه روایت شخونی بود روایت اماره مروان بود و به نسخ ها این توضیحات شابه بوده که تکرار نمی‌کنه روایاتی که مثلا دروات سکونی از صحبت سمنون میته از سمنون کرد و از سمنون خن و محر البغی و رشات فلحب و, و, و عجرال کاهه احتمالاً انفنام از صحب در اینجاها جنس باشه که چهار تا پنج رو شیش تاره کرده اما سهل تا عباد الله انصحب مراد الفلام زکری باشه شاید این در ذیل آیه بوده اکالون لصحب این نطور ما از کرده اینکه از اکارون نسوسی در با علماء یهوده این اشکال نداره که علماء... مثلا این اجر کاغم و محروم بقی و بگیم علماء یهود از این کارا نمی کردن اینه که در قرآن راجع به علماء یهود اصطار شده که اینها با پول گرفتن عوض می حکم. یعنی عربش حال عربش عرش آفر گفت حکم در اینجا مراد خصوص قضاقت نیست فتوه های داره حق می دادن میگه اصلا سبب دو قیمت مقدار پولی که بود تفاها رو یک احتمال داره که این مقدار سابقا توضیح که روایاتی که الان میبینیم به اثر ظاهره با هم تفاوت داره این نکته تفاوتش این باشه بعضی‌هاش تفسیر آیه این یک نکته یک نکته دیگه که من چند بار بنده اثر کردم احتمال داره سر اختلاف الهی باشه یعنی اکانالسوح در آیه رشوت بقیه رو رسول الله ادامه کردند اونا هم سخته پس مراد جدی در آیه خصوص رشوت در قصه یهود بقیه هم همونطوره من این توضیح سابقا نعرض کردیم ما در اصطلاح اسلامی یک فریزه و سنت داریم فریزه ما فرزه هم داخل کتاب و سنت ما سنه هم نبید این توضیحاتش تنباله خیلی باب مهم نیست که در فقر میتونه کارگشا باشه وقت ارز کردیم ما سن نهان نبی رو هم توضیحاتش گذشت تا که من میگم یکی در امور وجودی و واجبات تکالیفه یکی هم در محرماته ما سن نهان نبی ما سن نهان نبی رو در واجبات یک تفسیرش روش کردیم تا اونجایی که ما میزنیم یک تفسیر به بیشتر نداره توضیح شده استیگانه میکنم که را رو و هم ما ما سنه نبی در محرم دو تفسیر داره خوب زفر که دو, دو احتمال در ما سنه نبی اصولا ما داریم در محرم مثلا در روایت داره که اینالله هر رمان خم مسکر من الخم ال ال اونی که خدا تحلیم کرد شراب انگوریه و هر رسول الله کلا مسکره هر مسکر دیگه پس در دوانه هم از چوب از نشازه, از برک چیزای عجیز و شراب میگیرن تمام این شراب ها که بودن او هر حرمه رسول الله پس یک محرم الله داری یک ما رسول داری یا مثلا خداوند را خصوص حیوان و را حرام کردن و حرمه رسول الله مثلا حیوانات دیگه اگر بهش هضافه از تو در باب تفسیر این که صحب میخوام راجیب راجع به این قسمتی که سنن پیغمبر هست در باب تحریم اونی که ما الان تحسب اقل خود رو تفسیر بوزنیم اعتابه کنیم دوتاست تفسیری که ما می‌فهمیم از مجموعه سنن النبی در محرمان یک این که مراد پیغمبر از این سنتی که جعل کرده بفرمانی این هم نصدار همون. یعنی درست خدا من شراب انگوری رو حرام کردم. خبصا در مکه من توزیع نکردم. کردم. شراب رائعی در مکه شراب انگوری بود که از تا افنی بوده. هفتاز که اون شراب رائعی در مدینه شراب خورمانی بود. تو روید ما هم هست. تو روید سنیان هست. تو حاکم تو مصدرد نرم میکنه که وقتی درست رو داد. بسیار اونی که شراب بود. بسا زرت های شراب بود بریزن همه اون شراب ها شراب خرمایی بود جز یک خیلی که انگوری بود نستش خورمایی چون مدینه شراب های شکفتاز که نمید با مکه واضع داشت شراب متعارف در مدینه شراب خورمایی بود این بحث اینکه آیا شراب خورمایی رو پیغمبر در مدینه حرام کردن؟ او ما بحث سنته اون که در مکه حرام بود شراب انگوری بود اونی که در روایت داره ما به اصل الله و نبیه, نبیه به تحریم و شور به تا دیگر هست اون مرا شراب انگوریه من در سنه فیغمبر بر انواق شراب هم تحریم شد انواع موسکه یه احتمال این است که فیغمبر میکنون آخ هم دیگه در برحانه ولو منصرف به شراب انگوریست نا یه خبرم فهم میکنه پس مرکع سنت، به این باشه در مثل این جور چیزا نبیز و اینها این بحث خیلی خبیه در ساحت این بحث خبیه در ساحت این بحث خبیه دو دومی هم تو بعضی از روایاته و اون این که پیغمبر یه چیز رو سنت حرام میکردن هدفشون این بود این عمل خودش اون حرام نیست اما این بودن میرسونه به اصطلاح ماهای بود مقدمه حرام مثل لعن رسول الله که خرم عشره کاشن درخت انگور شرب به خرمی لیکن اگر انگور رو به کاره ولی اینکه که به خرم بکنه این چون مقدمه حرامه این به سنت رسول الله حرام شده تا اونجایی که من فهمیدم دهن اگر آقایم مراجعه کردن راه دیگری پیدا کردن اگر اختیار با خودشون تا اونجایی که من فهمیدم سنن و نبی مجموعاً در با محرمات دو تاست یا الهاق موضوعی است یا از با مقدمی است اون در روایات ما که آمده از کانون به صح صح یعنی رشده. این آقایی یمویه از صحبت سمانیه یا از صحبت مزن کذا و کذا این الهاق نداری است روشن خود؟ اونی که در برآن صحبت آمده خصوص است. اما رسول الله به نظام بعید نیست بعید نیست این حدیث معروف لعن رسول الله که احل سنت نهار کردم از که این حدیث در قصادر ما نیامده کلن نیامده لعن رسول الله الراشی والمرتشیه والرائش یجمه آدینه همه این هم اشاره به همین باشه اشاره به این باشه که صحبی که در برآنه که درده فرمی نقطه فرمشی شد کالون لصحب این حال قاضیه اون تحریمی که در برآن آمده روشنی شد یک راجع به باب قداس و رشرت و راجع به حال قاضیه لکن لعن رسول الله سزا یعنی پیغمبر اضافه کرده، پس یکی به نصد قرآن اون اکالون اونی که این صحبه میخوره اون قاضیه این روایت لعن رسول الله و رضا خود اگه در قسم من ارز کردم که این نقطه در این در این دو سال روایت که آنه که این که که سر که آنه دیگه لعن رسول الله گفته نگوست لعن الله این لعن رسول الله که این اشاره به توسعی که از ناهی فیلمان پس در ناهی رشته هم توسعه داده شد ر... صبح در ناحیه یکیسی هم که انجام میده توسعه داده شد اونی که داده با آید اونها تثیره یعنی روایات توی نحوه منتجه معنا بکنه این که بسه لحن رسول الله عراشی یعنی اونی که در آن روش حساب آمده اکار که قاضی باشه اما رسول الله در سنت خودشون اضافه فرمدن دو طایفه دیگر هم باید اکارون اضافه فرمدن یکی یک اون دلال و باسطه یکی اون که پول میره اونم مرمونه از ظاهر آهی مبارکه اون قاضی مرمونه در سنت رسول الله رسول الله هم توصیه اضافه این توسه ممکن از صده مرمونه اینه ممکن از صداحات مقدمات حرام باشه ممکن است بله ها در همون که از کردن من تاویی که من دیدم ما باورا نصاری در روایی به کلمان بزردان ترمون کم میانیم احتمالی که ما میدیم اینه که در هر دو توسعه داده شده مید. محضبیت نیست. یعنی رسولو هم بخواهد فقط این قاضی یهودی نبوده که افکاد ساتن هم همی که مسلمانی پیل میدیم اونم اون هم که دلاله اون هم حرامه بگرد بردید؟ پس بنابراین میخوره به توصیح موضوعی نه به مقدمه حرام اما مثلا فرسوی کلا قرزه یک جا با منفع این هم دوتا احتمالی یک فرسی که توش منفع با هم رباسی اسمش توصیح موضوعی احتمال دوم این که میگم این شما اقلا قرز میدید پول کشیده یعنی شما فرقا بگید میشه شما که دیدیم، در کودک بودن یه جورا منظره این نه دلون دو دستون نداره، دکتر می‌گه. رب او خودش دیده. اگر شما نامزدیم که توی منظره بود، این رو رسول الله علیه و آله که گذاشت. من از حالا کودک بودن یه جورا منظره که با، از کودک دست دستون نداره. توسیع موزویی، یخ تمدال و توسیع یه واستن من که توسعه موضوعی نباشه این من بردارم بابا این هم که ما آدت که ازیدیس روز داری فرقا ربا میدیم که این مقدنه میشه برای اعتقا به این نقطه رو خوب دقیقه بردارم و فهم به حساب مجموعه سنن رسول و و, و تفسیر و که اهل بگن کاملا تبرای معنا واضح و روشن میشه. این مقداری الان به نظر ما به حسب ظاهر ابهام روایت حل شد بقیه شو را فرضوا و صلی الله علی محمد و